بیدن لباس های برای مردم چطور است؟ اولید بدانید که هر عملی که باعث انگشت دراز کردن باشه از این آمال پرهیز کنید هرگاه که مردم اشاره کرد، اون نگاه بکن اون نگاه بکن و در آمالش خوب نبوده این آدم خوبی نیست خیلی بد میشه پس چیز باعث اندوش دراز کردن واشیتو نو... نیست خوب نیست لباس برا لباس های ممنوع هستند لباس زعفرانی هست لباس زعفرانی برای مرد ممنوع هست. لباس قرمز خالص هم برای مرد کراهیت داره لباس آوییشان برای مرد جایز نیست لباس نازوک هم جایز نیست لباس تنگ و لباسهای لباسای کل بر جستگی هم ظاهر بشه این هم جایز نیستن این خوب لباس خوب نیست. لباسی که از این ها باشه خوبه به شرطی اون لباس باعث جلب توجه نباشه که انسان دیگه کل از اخلاصش گرفته باشه. این لباس‌های زعفرانی رو هرگز نپوشید. حتی اطر زعفران رنگ زرد رنگ برای مرد استعمالش جایز نیست. اینها اثرات منفی در بدن دارن. نبی مکرم اسلام نهی کرد از رنگ زعفرانی و لباس زعفرانی رنگ نهی کردند. الله یه تحقیقی که خود دانشمندهای آمریکایی انجام دادهن روی کسانی که خودکوشی میکنن تقریبا این 10 سال جلوتر اینو من شنیدم میگن که تحقیق انجام دادن که افراد در آن زیاد خودکوشی میکنن نگاه کردن بیشترین افراد کسانی بودن که زیرپیراهنی آنها رنگ زافرانی بوده اینها منفی روی بدن میگذارن. پس هر لباس مفید نیست خود لباس بر انسان تاثیر میگذاره و حالت انسانو تغییر میده مثلا میگن قلال ابریشم نفوش مرد اثرات نسوانی و خانومی در انسان ها خل میکنه یا میگن اگر از صبح استفاده نکن سرطان سرخانزا هست آهن و مرد استفاده نکنه در دستش نکنه مشکلات پوستی و خونی ایجاد میکنه اینها اثراتی اند لباسا به همین صورت در بدر اثرات منفی داره استن در حدیث سئیه مکاری داریم که جدید داریم که نبی مکرم سرها نه کردن از نشستن بر پوست بابر و پوست در رندگان کردند ها یعنی هانه شی نیست یا گفتمونه کسانی که شطور چرانا سخت دل میشن آنهایی که گوسفن چرانا نرم دل میشن این تأثیراتی که انسان از بیرون میگیره روح انسان وجود انسان از ماهولش متاثر میشه و تأثیر میگیره انسان علا چیزی هست که مشاهده میکنی با هر چیزی انص میگیره انسان از اونس هست با هر چیزی منوس میشه با آوار باشه با با آوار انص میگیره در هر منطقی باشه با همون رنگ آب و هوا هم انص میگیره همون رنگ به خودش میگیره انسان همیشه تاثیرپذیر از بیرونه پس فوا تاثیرپذیر هست پس چیزها باعث دیگه شریعت نخواهد تاثیر منفی میگذارن به طور مثال حالا نگاه کنید اونا که لباس صفیح میپوشند، بیشتر معاظب در نشسته را حرفتا. هر جا بیشینه اول نگاه میکنه که من روی خاکی نشینه جای کسی نشینه لباسم کسی میشه اما کسی که لباس کدر پوشیده، اصلا افراد زیر خود رو نگاه نمیشینه می الان میگه معلوم نمیشنه این, این لباس چرخ بدن ها چرک بردار هست لباس چرک بردار این لباس چرک بردار بدنو چرک لطفا کرده لباس صفیح بدنو تاثیری لواصف تاثیر دار لواصفی پوشید که اثرات خوبی را بیاورم. خونهایی که دخخونهایشون تنگان، اونها تنگ پوچه میشه. خونهای خونهایشون بزرگان، اونها هم بزرگ میشه. تاثیرات هم که خود به خود بر انسان تاثیر میگذاره با خاطریند که خیلی از دباستار و شریعت نهی کرده.